بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و السلام و السلام علی محمد و آله اجمعین سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان شرکت کننده در این کارگاه تشکر می میکنم از همکاران خودم که زمینه برگزاری این کارگاه رو فراهم آوردن و در ابتدا تسلیت ارز میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ما در این کارگاه مختصر ابتدا برخی کلیات رو ارز میکنیم در میانه کارگاه یک سوالی رو به اشتراک میگذاریم دوستان پاسخ بدن و در نیمه دوم یا در انتهای کارگاه نموداری رو تقدیم شما عزیزان می کنیمیم درباره مجموعه کاری که در زمینه فخل حددیث تعلیف شده و شما باید اون رو به مخاطبینتون و شاگردانتون بیاموزید تا بتونن بگن ما فخل حدیث رو تا حدودی آموختیم. اگر دوستانی که صدای بنده رو ضعیف دریافت می‌کنن یا اصلا ندارن یه، تذکری بدن بسیار ممنون میشیم که یه بازخوردی از دوستانی که در فضای مجازی هستن داشته باشیم خوب بسیار خوب صدا میفرمان خوب هست شما میدونید که فقه حدیث یک دانش مهارتی هست وقتی ما از یه دانش مهارتی صحبت میکنیم یعنی بخشی از کار در ذهن انجام میگیره به شکل محفوظاتی را به خاطر سپردن و بخش دیگری در میدان و در عمل و با تمرین کردن درست مثل شنا کردن میمونه هیچ کسی با دهها بار خواندن یک کتاب شنا شناگر نمیشه. ممکنه بارها در استخ بیفته آب بخوره نزدیک بشه غرق بشه ولی شنا یاد بگیره ولی بلکسش امکان پذیر نیست یا بسیار نادره. کلیه دانشهای مهارتینگوونن، رانندگی، کوهنوردی، در علوم فقه خودمون اجتهاد همه اینها نیازمند عملی به کار بردن یا کاربست بست است که در این زمینه آموخته ایم الان فرض بکنید ما یاد میگیریم که چگونه واجه بکنیم اما تا پنج بار، شیش بار، هفت بار، ده بار معنای واجر و خودمون از طریق همون فرایندی که به دست آوردیم نیاموزیم اون حاصل نمیشه برای ما به قول ما طلبه ها اون ملکه اجتهاد ملکه فهم ملکه عمل اون برای انسان عملی نمیشه همین رو هم ما باید در ارتباط با نوآموزان و شاگردان خودمون داشته باشیم یعنی باید بدانیم که فقه الحدیث رو اگر میخوایم یاد بدیم باید حتماً حتماً علاوه بر یک سلسله محفوظات همیشه یک سلسله عملیات فقه الحدیثی هم دانش آموز، دانشجو اون شاگرد، طلبه محترم انجام بدن تمرین، تطبیق و انجام عملیات بسیار لازم هست خب در گذشته‌های دور ما فقه داشتیم من این اسلایدو میتونم با این سوال شروع بکنم حتی سوال رو میتونم ذره بالاتر ببرم و اشکال بکنم که آیا ما فقه الحدیث در قدیم نداشتیم آیا بسیاری از فقهای ما بسیاری از روحانیون ما بسیاری از مفسران ما فقه الحدیث نداشتند بسیار بهتر از من و استادان من حدیث رو میفهمیدن، به کار می بردن در فقه در تفسیر و در خیلی جاهای دیگه خب آیا اونها کتاب روش فهم حدیث داشتن کتاب منطق فهم حدیث داشتن چار تا فقه الحدیث یک دو سه چهار داشتن کتاب های این گونه می مسلم این کتاب ها نبوده اون موقع و نمی خوندن. و مسلمم هم بگیم فقه الحدیث نمی دانستن. پس چه کار می کردند؟ اونها از طریق مطالعه پیمایشی و خواندن هزاران حدیث به این می رسیدند. به عبارت دیگه فرصت و انرژی فراوانی رو می گذاشتن تا به مرتبه فهم حدیث برسند این روش مثل کسی میمونه که خداموز به شنا یاد بگیره. به هر حال او خودش رو از غرق شدن نجات میده. اما چقدر زمان و چقدر انرژی میبره و گاهی اوقات ممکنه آسیبهای متوجهش بشه. متاسفانه در دهه های اخیر این روش به علت وقت گیر بودن و انرژی بر بودنش کلا کنار گذشته شد، این آسیب بود. و بهجاش فرآند فرایندها و شیوه هایی که برای فهم حدیث از طرف پژوهان، حدیث پژوهان، کسانی که تو این کارهای روشی کار کرده بودند ارائه شده بود به اونها اکتفا کردند. به عبارت دیگه فرایند فهم حدیث رو یاد گرفتند، و تصور کردن بدون اینکه لازم باشه این فرایند رو در صدها حدیث تطبیق بدن تصور کردن اگر روش یاد گرفتن فقال حدیثم میدونن این روش رو به کار برده اند ولی موفق نبوده است این روش برای فهم حدیث به کار برده شده اما در مورد افراد بسیار نادری جواب داده حالا میگیم اونها هم چرا؟ توی یه صحبت دیگه یه خواهیم کنم خب بسیاری از افرادی که تو مسئله روش فقه حدیث و خود فقه الحدیث کار میکنن، این دو روشو رو تلفیق می کنن. و درست هم همین است تلفیق می به این معنا مثلا اگر مرحله فهم حدیث هشت گام داره یک به یک گام ها رو یاد می گیرن و جای منطقی اونها رو هم در نظر می گیرن. مرحله پیش نیاز حدیث بودن، صحیح بودن، فهم مفردات، فهم اصطلاحات، فهم ترکیبات، ساختارهای نحوی، ساختارهای بلاغی، تازه به فهم مت نایل میشن. فهم مقصودم که خودش گردآوری قرینه ها و سه چار دسته هست. ولی اینا متوجه شده بودن که باید اینو در 20 حدیث، 50 حدیث، صد حدیث تطبیق بدن یعنی یه حدیثی که فهمش مشکله بیارن بذارن تو این فرایند ببینن پاسخ میگیرن یا نه این کار بسیار کار درست و خوبی هست و مشکلی نداره منتها این شیوه ترکیب گاهی اوقات انزمامیه گاهی اوقات پلهیه. یعنی چی؟ یعنی برخی تصورشون اینه که فرایند رو باید تا آخر یاد بگیرن هشت مرحله رو حالا تازه چهار جلسه آخر تر بشینن اینا رو تطبیق بدن ما تو برخی کلاسا این رو باش مواجه بودیم استادان بسیار عزیز بسیار گرامی بسیار فرهیخته روششون هم انزمامیه مثلا در ده جلسه روش فقه الحدیث و فهم حدیث رو آموختن به شاگردان و دانشجانشون بعد چهار جلسه پنج جلسه هم حالا اونو تمرین میکنن این بسیار بهتر از اون روش هایی که فقط فرایند یا فقط تطبیقی کار کنن ولی بهتر از اینه که هر مرحله تطبیق بشود یعنی ما هشت گام داریم و 16 جلسه در ترم هر دو جلسه یک گام جلو بریم به عبارت دیگه نیمی از جلسه یک گام نیمی از جلسه یا یک جلسه یک گام یک جلسه تمرین یا بالعکس در واقع اون دیگه باید یک استاد بزرگ خودش مشخص کنه که چه مقدار از جلسه تمرین چه مقدار از جلسه آموزش فرایند خب یه نکته که مهم هست ببینید ما با دانشجویانی روبرو هستیم که گاه تنها ادبیات عربی که خوندن ادبیاتیه که توی دو ترم یا سه ترم اول اون کلاس خوندن طلبه نیستن دانشجوی زبان عربی نبودند سابقه یه کار عربی نداشتن توی کشور عربی زندگی نکردند و بسیاری از این مسائل دیگه خب اگر ما در واقع این حالت رو تصور کنیم که شخصی که میاد در یک ف... کلاس فقال حدیث میشینه این شخص اساسا با مفردات روایت آشنا نیست که بخواد فهمش رو شروع بکنه خب این رو ما نمیتونیم سطح انتظاری رو ازش تعریف بکنیم که از سطح انتظار یک طلبه یا یک دانشجوی ادبیات عرب میخوایم بهش فقه حدیث بیاموزیم به همین جهت شما در کلاس هاتون با اون ارزشیابی تشخیصی که همه استادها توی کارگاه روش تدریس میدونن اینا رو دیگه با اون ارزشیابی تشخیصیتون سخف و کف یادگیری کلاستون رو تعیین بکنید این در همون اول مهمه اولا تأثیر روانی تو خود شما داره در پایان ترم نمیگید من ناموفق بودم چون واقعا بعضی وقتا از برگه هایی که انسان سعی میکنه تصمیم میگیره دیگه ترم بعد تدریس نکنه همه میخندین چون واقعا با این روبرو بودین و این مسئله خیلی مهمیه دوم اینکه، سطح ارزشیابی نهاییتون از کلاس متناسب خواهد بود یعنی وقتی شما میگید سخف یادگیری کلاس من این هست دیگه 20 رو برای اون قرار میدید نه 20 رو برای کسی که مثل خودتون حدیث رو میفهمه خب من سخف یادگیری رو بالاترین سخف از فقه حدیث رو توانایی فهم و طبیعین برخی ممکنه یه حدیث رو بفهمند ولی برای دیگران نتونن توضیح بدن این خودش باز خیلی خوبه ولی بالاترین نیست بالاترین اینه که هم خودتون بدونید هم تبیین مثل علام مجلسی مثل حضرت و عطلال شهری رحمه الله مثل برخی دوستان بسیار قویه حوزوی و دانشگاهی ولی کف یادگیری هم مهم است یعنی به حال کسی که در کلاس شما میاد و شما زحمت 16 جلسه تدریس رو به اون تحمل میکنید باید مراحل پیمودن فهم حدیث رو بتواند بشمرد به عبارت دیگه از حفظ باشد نه به عنوان یک صفحه حفظی چون زیاد عمل کرده است الان به همه شما بگیم چه جوری رانندگی میکنید خلاص میکنیم استارت میزنیم کلاچ میگیریم دیگه فکر نمیکنید فوری میگی این رو من در کلاس هام از طریق نوشتن همه مراحلی که تا اون جلسه خوندیم مثلا جلسه اول فقط پیش نیاز رو مینویسیم جلسه دوم پیشنیاز و به اصطلاح صحیح بودن متن، تصحیح متن. جلسه سوم، دوتا تا پیش نیاز و فهم مفردات. جلسه چهارم این ستا تا به اضافه فهم اصطلاحا همین جور. وقتی 16 جلسه دانشجو و طلبه این رو روی پای تخته ببینه، عملنم به کار میره، در پایان ترم به شما میتواند بگوید که هشت گام اصلی فهم حدیث چیز یه سفارش های کلی هم دارم که ازش میگذرم این درشتر میتونیم بکنیم الان یا دیگه امکانش نیست چون وقتی من نمیتونم بخونم بسیاری از افرادی هم که مثل من پیرمردن توی منیتراشون نمیتونن بخونن این استراحت من مخصوصا دادم اونایی که دیر اومدن از دوستاشون بپرسن تا حالت چی گفتیم بسیار خوب ممنون شکر. نه خانه هست دیگه یک کمی دیگه هم بیشتر بکنید بسیار خوب، ممنون خوب سفارش هایی که برای فخل الحدیث باید بیشتر بدونیم به تجربه آموخته شده یعنی هیچ دلیل منطقی ریاضیواری پشتش نیست ما دو روش داریم اینجا روش قیاسی یعنی روش اینکه در ابتدا کل مسئله رو به دانش آموز از یه دیدگاه کلی به دانشجو از یک دیدگاه بالاتر بگیم و بعد بریم مرحله مرحله ببینید الان شما اگر می‌خواید موتور ماشین رو برای یه نفر توضیح بدید میگید یه محفظه احتراق داره یه کانال سوختگیری داره یه شمع جرقه داره یه کانال هم برای اخراج دودها داره میگید کل ماشین اینه حالا بعد میرید جزئیاتش سیستم جرق زنی باتری هست کوهل هست دلکو هست شم هست وایر و از این قبیل میدید داخل ریز میشید اینم همینطوره شما کلی فقه الحدیث و این هشت مرحله رو ابتدا براشون بگید من یه فایلی برای شما تدارک دیدم اینو یکی از دانشجویان بسیار قوی تهیه کرد بر اساس روش فهم حدیث من این رو در بین اون دو قسمتی که ارز کردیم که یه سوال تر رایی میکنیم براتون به اشتراک میذارم میتونید دانلودش بکنید خب دوم در هر مرحل تمرین بدین این بر اساس کدوم شیوه است؟ همون شیوه ترکیب پلی. ترکیب پلهی من در کتاب روش فهم حدیث و جناب آی تواتبایی در منطق فهم حدیث و بنده و آقای پسندیدر که کتاب های فقه یک تا چهار در پایان هر فصل یا هر درس یه بخشی رو گذاشتیم پرسش و پژوهش. یکی دوتای اول پرسشن یعنی باید طرف کتاب رو بخونه از طریق محفوظاتش پاسخ بده یکی دوتای انتهایی تمرینن پجوهشن حتی گاهی اوقات ممکنه یه پژوهش جدی باشن خیلی برای استاد مشکله که هر جلسه این پرسش و پژوهش رو بده و دوباره جلسه بد بگیره و صحیح بکنه. یه دفعه من برای یکی از اون دوستام گفتم این کارو گف گفت خیلی حوصله داری. ولی این حوصله رو باید به خرج داد. بنده در کلاسام برای هر تمرینی یه نمره گذاشته بودم. یعنی یه شخصی ممکن بود فقط ۲۵ صدام از اون بیاره. و در طول ترم ممکن بود از این مثلا تا9 تا تمرین برای هر میگیر تمرین و هزهش فقط چهار نمره بیاره بعضی هم بودن هفت نمره هشت نمره می آوردن ولی همه کلاس درگیرش می شدن. و هر کسی که جلسه بعد می آورد بیس صدم کم می شد. یعنی باید همون جلسه می آورد یعنی اگر این تمرین رو دادیم برای هفته بعد این یک نمرش برای هفته بعده اگه دو هفته بعد بیاد میشه 75 صدوم اینجوری که باشه اون شیوه پله‌ای کاملا چی میشه اجرا میشه البته به جهت تجربه عرض می‌کنم اینو مال 80 درصد کلاستون به کار ببرید همیشه 20 درصد کلاس مخالفت خواهند کرد یا تنبلی خواهند کرد یا با شما همراهی نخواهند کرد به هر دلیلی عصبی یا ناراحت یا افسرده یا مجبور به مثلا استفاده از کارهای دیگه نشید سر هشتاد درصد اون سقف برای خودتون ولی کلیت کلاس این باشه تمرین هر مرحله‌ای مرحله بعد گرفته بشه تصحیح بشه بازخورد داده بشه خب اگر ما گفتیم بشه تمرینی و درهم کرده با خواندن باید تا با شتاف خل حدیث خوب اتفاق بیفته ما باید از کلاس خودمون شروع کنیم در هر کلاسی اول و آخر کلاس حدیث بخونید بنده الان در نهج البلاغه که درس میدم دکتری هم هستن ولی آخر جلسه سعی میکنیم یه حکمت دو حکمت سه حکمت خانده بشه حالا ممکنه یه جلسه بیشتر رو کنیم یه جلسه کمتر ولی شما سعی بکنید این رو منظم باشه من این روی ای که از دوستام از آموختم که قرآن درس میدادن اشون اول جلسه همیشه یه آیه از قرآن میخوند بعد از 16 جلسه طرف بالاخره 16 هایی قرآن رو با ترجمه و تا حدودی تفسیرش بلده شما اگر هر جلسه دو حدیث بخونید سی تا حدیث بالاخره طرف خونده. مگه نکته‌ای هم داره همون رو به بحث میگذارید خب که جذاب باشه نمونه‌های کاربردی بخونید مثلا فرض کنید شما من حالا یکی دو تا اسلاید براتون گذاشتم بعداً میذارم تو گروه براتون مثلا فرض کنید برای یه رشته مدیریت دارید درس میدید مثلا دانشکده مدیریت هم مثلا حالا بحث فقه حدیث هم دارن یا دوست دارن حدیث های مدیریتی مثلا فرض کنید روانشناسی هم احادیث روانشناختی مثلا اخلاق هم احادیث اخلاق طلبه فقه, فقه خان هن. احادیث فقی و سعی بکنید ترجمه های زیبا ترجمه های جذاب به کار ببرید ما الحمدلالله از نظر ترجمه یه برنامه خوبی داریم به نام گنجینه نورزده علاوه بر اون خود دارالحدیث تمامی لو های فشرده مشتمل بر کتاب های حدیثیش ترجمه داره یعنی اکثر کتابایی که ترجمه دارن تو اون لوح هست یعنی یه منبع عظیمی از ترجمه های خیلی زیبا شما توی اینترنت هم میتونید بزنید ترجمه آقای شهیدی دیگه خیلی جاها در اختیاره یا خودتون ترجمه کنید هیچ مشکلی نداره خب من یه دو تا مثال اینجا گفتم که خودمونم تطبیقی بریم جلو بعدن نگم که تو چرا خودت مینید این حدیث حکمت نوزدهم همه نهجل بلاغه هست توی قسمت حکمت منجرا فی عنوان عمله اثر به اجله خب کلام حضرت که همش آهنگین و مصجب و زیبا هست ولی آقای شهیدی هم تونسته این رو خوب به اصطلاح چیز بکنه ترجمه بکنه آهنگین خب چی نوشته اینجا این خانه هست که باید ریسترش بکنیم شما هم همین کار مخصی بکنید یا خب هر که همراه آرزوی خیش تازد مرگش به سر دراندازد به ن شهیدی هم قوافی رو تفصیل اینها رو رایت کرده و هم سجر رو دقیقا هم معاش همینه یعنی کسی که سوار بر اسب آرزو بشه و به واقع یاد توجه نکنه یه دفعه داره میتازه تازه مرگلش میرسه یادش میرسه داره میمیره انسان مرگ رو فراموش میکنه در پرتابه آرزوها نه. یا مثلا اون حدیث مشهوری که تو روش فهم حدیث گذاشتم دوستانی که فقل حدیث یک دو سه درست دادن اگه میتونن بنویسن من با عینک میتونم بخونم آیا این قیمت و کل یحسنو رو در کلاس تا حالا درست دادین؟ میگن اگر کوچیک‌تر بشه که کل متن رو ببینیم. می‌خوان دوستان همه متن رو با هم داشته باشند. دوستانی که تو فضای مجازی پیغام میدن. آی حسن زاده شما اگر پیغامی دادند و من باید توجه میکردم و نخوندم و ندیدم به من تذکر بدیم خب قیمت و کل امرن ما یحسنو یا ما یحسن این در ادبیات قدیم و بسیار کهن ما ترجمه به شعر شده و به شعر خیلی قشنگی درآمده. میگه قیمت تو حالا من میخونم از این تیکشو حفظم قیمت تو در آنقدر علم است که تن خود به آن بیارایی حالا این شعر توی شرح رشید و هست که مال حدود 6-7 قرن پیشه خب یه نکته اینجا هست و اون اینه که ما باید دانشجو یا اون شخصی رو که در کلاس خودمون نشسته متوجه بکنیم که فهم حدیث نیازمند تلاشه یکی از دوستان ما اون بقیه که من روش فهم حدیث رو نوشتم اشکال کرد گفت مگر فهم حدیث آنی اتفاق نمیفته خب چه چیزی شما برایش میخواید سامنه لکم روش بذاری شما اگه میگفتی روش بالا رفتن از پشتمون خب بله باید آدم چارده تا پلر رو دونه دونه بره برسه به پشت ولی روش افتادن از بون که نداریم آنه میده دفعه میفته اینو باید در همون جلسات اول به دانشجو و به طلبه تفهیم بکنید که هر حدیث روش داره منتها بسیاری از احادیث فهمشون ساده است به سرعت برق توی ذهن میگذره ما نمیتونیم اون روش رو شما خیال میکنید گفتن فسا یک فی همولا از گفتن قل هو و عهده نه چون اینو زیاد گفتیم اونو کم گفتیم اینطور وگر نه کسی بره الان امشب خونه تمرین کنه در لورستان چل لور هر لوری چل نره لور خیلی راحت میتونه بگه ها. ولی کسی که میخواد اول بگه این ساده تره یا سخته هیچ کدوم برای زبان و برای ذهن فرق نداره ما یه احادیسی رو شنیدیم یا یه احادیثی خیلی ساده هست اینا رو ما خیال میکردیم که این حدیثه روش نداره وگرنه عینا همون فرایند اتفاق میفته علم و نورو ما تو ذهنمون میگیم علم یعنی چی؟ نور یعنی چی؟ ساختار نهویش مبتدا خبره این بر اون حمل میشه این میشه مستاق اون تموم شد وگر نه همین علم و نورون مثلا فرض بکنید واژه نور رو نمیدونستیم یا اصلا الان شک میکنیم آقا علم نور نیست من هرچی علم دارم اینجا تو این تاریکی روشن نمیشه خب این اون مفهوم استاریه تو ذهن ما شکل گرفته چه کار کنیم که این منتقل بشه به دانشجو به طلبه احادیث کوتاه مشکل باید بیاریم مثل اینه که الان من اووردم اینجا نبایدم بنویسید باید بخونید حالا که اینجا نوشته هست یک کار راحت شده ولی من تا حالا با این همه پیره ما دیگه خیلی ساله داریم درس میدیم هر کلاسی گفتم بنویس اتت ات توسب سب او گفته چی؟ گفتم بنویس الرجل موهن راقهون درست ننوشته اصلا بلد بودن اینا هم جز سواد نیست. نفر اولی هم که به من گفته منم بلد نبودم بنویسم. ولی اینو میفهمونه که یه حدیث کوتاه هم میتونه نیازمند روش باشه. این رو شما دیگه باید خودتون پیدا کنید دیگه شما این دوتا رو نمیتونید استفاده کنید الان برای همه استادای سراسر کشور رفت دیگه توی اینترنت میره تموم میشه شما باید برید دوتا حدیث کوتاه دیگه پیدا بکنید ولی یواشکی یه آدرس میدم برای اینا کتاب المجازات و خیلی خوبه من حالا دوباره هم از شاهد اسلایدش بیاد. من اراد الله بهی خیرا او خیلی طول میکشه تا معنا شما بفرد خب اینم اون حدیثی که گفتم مثلا حدیث های جذاب بگذارید این حدیثی که اینجا میبینید به قدری نکات مدیریتی داره که من تا حالا چند بار خوندمش که اون نکته های مدیریتیش یادم نره خیلی خیلی انگار که امروز دارن امام صادق علیه السلام حرف میزنن یه شخصی اومد خدمت امام عرض کرد من مبتلا شدم به یه شغل دیوانی تو خلافت بنی عباس ای من برخی رو اجازه میدادن گفتن اینا به خاطر منافعی که برای شیعیان داره گاهی اوقات اجازه میدادن بعد میگی یه دستور العمل به من بده شما فقط کافیه این و ترجمه شو بخونید ببینید که خیلی کسروشان امام صادق علیه السلام بگیم انگار دانشکده مدیریت دکتری گرفتن ولی انگار که دارن تو دکتری مدیریت درس میدن. یعنی انگار که دارن نکات برای مدیریت امروز رو میفهم. خب. ما طبق همون روشی که در کتاب روش فهم حدیث اینم من ارز بکنم شمایی که دارید درس میدید فقه حدیث یک دو سه و چارو باید روش فهم حدیث و منطق فهم حدیث رو خونده باشید یعنی یا باید درس گرفته باشید یا باید بخونید ما یه سیستمی در حوزه داریم شخصی که میره رده بالاتر رده پایینتر رو درس میده مثلا میره کفایه میخونه دیگه میتونه اصول فقه رو درس بده البته اگه خوب خونده باشه خوب. به عبارت دیگه استاد نباید یه شب جلوتر از شاگرد باشه این خیلی نکته نادرستیه این اطلاعات فقه الحدیثی شما باید در حد روش فهم حدیث و کتاب منطق فهم حدیث باشه اما برای تدریس فقه حدیث به دانشجو همون فقه الحدیث یک دو سه بیشتر از اون بالاتر نباید بیاد یعنی عملی نیست اون طرف نمیتونه با اون سطح دانشی و ادبیات عربی بیشتر از این بالا بیاد خب ما تقل اون روش هشتگانه مرحله هشتگانه جلو میریم نکاتی رو عرض کنیم نه اینکه بخوایم خود هشت مرحله رو آموزش بدیم ببینید تو مرحله اول یعنی دو تا پیش نیاز داشتیم اینکه آیا حدیث است دوم اینکه صحیح است یا نه برای اینکه ما بفهمانیم به دانشجو و به طلبه که این نیاز کار ما هست دوباره باید مثل همونجا دو تا سه تا متن بسیار مشهور رایج متداول که میگن حدیث است یا میپندارن حدیث هست ولی حدیث نیست رو بگیم مثل همین اطلب من المهد الالت ما از بچگی یاد گرفتیم حداقل نسل ما اینطوریه. مدرسه که میریم اون بالاش اینو نوشتن چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش به جوی بعضی هم گفتن چنین گفت فردوسی پاکزاد ها هیچ کدوم صحیح نیست نه حدیثه نه شعر فردوسیه شما کل شاهنامه و اشعار فردوسی رو به چرخید ببینید این شعر پیدا نمیشه و در روایات هم از قرون اولیه که هیچ از کتاب قرون وستای ما نه قرون وستای اروپا اونها هم باستوش پیدا نمیشه خب اینجا یه آفتی پیدا میشه این من این تیکر رو آوردم برای این شما که پنجتا از اینا تو کلاس بگید به پنجمی که برسه بنیان اعتقاد دانشجو به حدیث سوز شده میگه اینا که انقدر مشهورن هیچ ریشه ای ندارن وای به حال اونایی که حاج سر منبر گفت فلانی توی سخنرانیش گفت فلان کتاب نوشته اینو باید شما چاره بکنید این چاره اندیشیش چیه؟ چاره اندیشیش اینه من اینجوری عمل میکنم حالا ببینید اینجوری خوبه یا نه میگم حالا شما احادیثی رو که شک دارید یا میگن نیست بگید توی کلاس گفتن از نظافت و من ال ایمان من گفتم مضمونش زیاده این فوری گفتن الاعمال بالنیات یا نیت المؤمن خیر من عمله گفتیم نه این متن داره منتها سندش ممکنه اینجور باشه مشابه داره این آفتیه که باید حتما چاره بشه در مورد حدیث بودن یعنی یه مرز باریکیه هم باید به طرف بفهمونید که این نیازمند بحث و تحقیق هم باید زیرپایه اعتقادیش به حادی سست نشه من با همین که مواجه بودم همین هم براتون گذاشتم. خود واژه ایمان به این شکل کلمه ای نیست ولی تنظ ظفو به کل مستطعتم دیگه از این بالاتر می رویم. هر وسیله شد خودتون رو تمیز کنید. الان آب دارید آب ندارید دستمال ندارید فلا خب لن خلل الجنه الا کل دیگه این از این بالاتر، ان الله یحب و ناسکن نزیف نمازخون پشمالوی جولیده ی اینا رو دوست نداره من, من اخلاق الانبیا اتن مرحله دوم تو یعنی پیش نیاز دوم سه حتمتنم همین آسیبو داریم یعنی اگر شما نتونید این رو نیازشو منتقل بکنید تصور دانشو اون طلبه اون فراگیر اینه که هیچی مشکلی نداره شما کاملا حدیث رو میخونید همون جوری هم معنا میکنید خب برای این کار من یه چند تا مثال مشهور توی کتاب آوردم که کانن نبی استحب العسل یوم جمعه. خب عسل روز جمعه با پنجشنبه با چهارشنبه فرق نمیکنه بعد میگیم این بوده قسل با یه نقطه این برون میشه. همین آسیب و فوری اینجا برطرف میکنیم ازا احبالله و عبدن اصله همه میگن نه قصله میگیم نه اتفاقا اینجا اصله هست وقت معناش چیه؟ معناشو براش ارائه میدیم یعنی باز باید اینجا می یه مرز باریکیه هم بفهمونیم باید متن پژوهی بکنه احادیث مختلف رو توی کتاب مختلف ببینه همین که فوری هر چیزی رو که به ذهنش ناآشنا اومد کنار نگذاره ناشنا بودن دلیل بر غلط و اشتباه بودن نیست آخه چند تا مثال زدیم زعیمون به سلاست عبیاتن فلجنفی جنفی ربازه ها وزیار خیلی ریازه ها ریاز یعنی باغش. رباز یعنی حاشیش حومش آهان عرض من اینه که اون روش فهم حدیث و منطق فهم حدیث که بخونن مال همینه یعنی در اونجا نمونه بیشتری ارائه شده ثانیا ما الان الحمدلله نرمفضارایی داریم که نسخه بدل رو هم نشون میدن مثلا تو خود پایگاه جامول احادیث نور در حالتی که مثلا شما یه واجه یا یه ریشه رو بزنید نقلا متفاوت یک حدیث رو هم میگن بسیار سوال خوبی بود و بجا بود خوشبختانه خوشبختانه کافی پونزده جلی دارالحدیث به صورت نرمافزار ارائه شده چاپ هم شده منطور چاپش خیلی گرونه توصیه نمی کنیم به صورت نرم افزار تو جامع احادیث مرکز نور هست تو پایگاه جامع الاحادیس هم هست تو خود لوح فشرده مجموعه کتب پژوهشگاه دارالحدیث هم هست در پاورقی های این دوره 15 جلدی پر از نسخه بدله پر از نسخه بدله شما به ویژه توصیه اینه من همین چهارشنبه دوشنبه برنامه جرعه میرم رادیو معارف داشتم یه روایتی رو میخوندم نسخه بدل داشت که بسلاح النسک و المسکنه با هم مخلوط شده بود هیچ ربط معنایی ندارن ولی معنا کاملا عوض میشه منتها از نظر رسم خط قدیم این امکان پذیر هست نسک نونش با نقطش اگر کنار هم جمع بشن میم خونده میشه م... مس کنه درست یه مقدار تغییرات به توی جوهر و قلم بشه از در برخی شروح کتاب‌های حدیثی هم به نسخه ها اشاره میکنن مثل مرئات العقول مثل شرح مرلاصاله در نهج البلاغه مثل شرح ابن ابوالحديد ما حتی در مورد نهجل بلاغه یک نرم افزاری داریم نسخه های خطی نهجل بلاغه مشهور رو نسخه های مشهور رو گردآوری کرده میتونید استفاده کنید انجام نهجل فکر کنم داره اون حدیثیه که من به لافاصله میخونم بعد از یستحب بلغسل و اصل این حدیث که به باری متوجه باشه که اصله هو این خط و فونتیه که من در اختیار گذاشته بودم یا تغییر پیدا کرده به, به این شکل آها. چون من اگر اینجوری کرده بودم به خودم باید اشکال میگرفتم اصلای اگر میخواید در کلاس به شکل خانه عرضه بشه بعد از خط بیزر یا تیتر اونم به حالت بلد زر به حالت بلد تیتر که همیشه بلد استفاده کنید که اینجور نشه. حالا در اینجا این شکل شده باید دوستان ببخشم. من پاورپوینت نه به شکل پی دی اف. خود پاورپوینت رو در گروه میگذرم همه دوستان بعدا بتونن استفاده راحت تری بکنن. خب. در مورد مراحل فهم حدیث فهم متن و فهم مقصود داشتیم مفردات و ترکیبات در مفردات و ترکیبات اون چیزی که مهمتره مفردات هست ما یه به اصطلاح پیشفرز ذهنی بیشتر در حوزه شاید در دانشگاه هم همینطور باشه داریم به این شکل که زبان عربی رو یک زبان ریشهی و معانی به هم پیوسته میبینیم یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا به این ظالبه عذاب، معذب، تعذیب، معذب همه اینا معناشون ما اگر عذبه رو معناشو بدونیم همه اینا رو میدونیم راحت یا مثلا فرض بکنید واجه عصر دیگه هممون ما می میدونیم الان اصر ها؟ بعد میگیم می که یه مفسر گفته والعصر الاصر و دهر چرا حبتی داری میریم میبینیم اصر یه معناش یعنی فشرده ای اصارم از همینه العصیر و الانبی ازاغلا توی فقه و اصولم همینه ای پس یه معنی دیگه میده بعد میبینیم ابن عربی میگه که جهنم خدا هم شیرینه چجوری ابن عربی اینقدر تو عرفانت بالا رفته آقا مگه نمیگید عذاب ریشش از به ما اون عذب فرات از بنی شیرین عذابم یعنی شیرین ولی لغت شناسا رو به ما اشکال میگیرن میگن آقا اینطور نیست که زبان عربی یه واژه‌ای معنیش همون باشه و تو همه مشتقات هم ماده باشه نه یه معنایی نه همونی معنا تو همه مشتقات به اون معنای اصلی به کار میره اصلا ممکنه توی یه به یه معنای دیگهای به کار بره همه اینا امکان پذیره اینو چجوری میخواییم به دانشجو یا فراگیر بیاموزیم از طریق همین واجه هایی که ما احساس میکنیم بلدیم ولی معناشو بلد نیستیم احتمال جاهله صدقه دو سه بار از شما پرسیدم اگه این دفعه بلد نباشین دیگه باید یه <تصفيق> فکری بکنین. یعنی چی احتمال؟ همه میگن یعنی خب تخمین زدن، احتمال دادن. اولا که من بعضی جاین رو می میخونن احتمال الجاهل صدقه. چون با احتمال حساب احتمالاتو اینا بعد میگه آقا احتمال در زبان عربی بانه تحمل از واژه‌هایی استفاده می که تو زبان فارسی به یه معنی دیگهی به کار رفته شکلاً معنوسه ولی معنی غریبه برای ما اینا متوجه میکنه که باید به کتاب لغت مراجعه بکنه این تو فرهنگ ادبیات زبان ادبی آشنایی زده هاییه بله خب ببینید همین رو من اصلا نمی همه میخونن لبان ما 99 درصد افراد اینو میخونن لبان درصدی که چیه؟ لبانه همه لبان. هم با لبنیات اینو پیوند میدن دهنشون هم آب میفته ها خب ولی این در واقع منوی کندوره دلیل چیه کتاب لغت حدیثم هست ببینید اللبان الکندور درست. یا مثلا میگه که حالا من اون حدیثشو بردم مزق لبانه فلان کار میکنه لب مزق یعنی جویدن خب لبان اگه شیر باشه ماست باشه میشه جوید البته انگلیسی ها میگن ما آبو میخوریم غذا رو می نوشیم یعنی خیلی می جویم، خیلی بادن ولی این بخواسته زبان مبالغ است ولی به صورت معمولی ما می گیم فلان چیز رو می یه چیز مایه رو نمی جویم خب یا مثلا فرض بکنید الحلبه و المصلا یا المصلی هلبا آدم رو یاده حلیب میندازه الان عربا به شیر حلیب میگن نمیگن لبن لبن رو به ماست و دوگایینا میگن شیر و حلیب میگن اگه کشور عربی رفته باشید الحلیب الفلان الحلیب و تازش مثلا خب ولی این هیچ ربطی به اون ریشه نداره الحلبه اصلا ربطی به اونجا نداره مسلی خب میگیم یعنی گذار یا مسلای قدس مثلا قوم جای نماز جمعه ولی باز به اون معنا کاری نداره تو این روایت یه معنی دیگه هست هلبه یعنی چند تا اسب که جمع شدن با هم مسابقه بدن مسلی یعنی اسب دوم برنده کسی که مدال نقره میبره حالا چه ربطی داره یه موقعی برای تو نشالله توضیح میدیم اگه وقت شد آخر جلسه ما یه چند دقیقه برای پاسخ به سالات وقت بذاریم تو اونجا اگه وقت شد میگذاریم خوب. این نیاز رو ما باید به فراگیر منتقل بکنیم که نیازمنده همشون حتی اونی که دانشجوی ادبیات عربه نیازمندن که به کتاب لغت مراجعه کنن اگر به کتاب لغت مراجعه نکنن ممکنه کچف همی بشه خب متاسفانه ما در درسهای دوره کارشناسیمون در دانشگاه، در درسهای طلبگیمون در دوره مقدمات درسی به نام فقه اللغه نداریم رشته ادبیات عرب دارن صبحی ساله هم یک کتاب هستن راجع به این داره صبحی ساله که مصحح مشهور نحجل بلاغه هست حالا مسحه که اعرابگذاری و ترجمه لغات خیلی قشنگ کرد ولی آشنایی سطحی عمیق که هیچ سطحی هم ما با کتاب‌های لغت نداریم ما الان بسیاری از افرادمون مقایس لغت رو باز کنن معنای اصل اصیل اصول نمی‌دونن یعنی چی نه اینکه به اصطلاح این مختص دانشجوان ما یا حوزه ما اصلا ما علم اللغه رو تقریبا فراموش کردیم تصورمون اینه اگه سیدی قاموس رو داشته باشیم لسان عربم از این انگشتیا داشته باشه سر حرفش بتونیم بریم اونو پیدا بکنیم دیگه کتاب لغت رو دوستی داریم میفرمایند که سه تا علم همین خیال میکنن کتاباش رو داشته باشن علمش رو دارن سه تا علم رو شما چی میگید سید جان؟ یکیش لغته، دوتا دیگهش، یکیش هم تاریخه، تاریخ خیلی علم سختی، علم آسانه نیست، نه خود تاریخ میریم کلان تاریخ میگیم چی شده، این کتاب تاریخش هست دیگه، هم رجاله اگه کسی تو کلاستون یه سوالی ما مربوط به درس نبود کرد چی جواب میدین؟ یعنی مربوط به موضوع درس نبود <تصفيق> خب ایشون خودش میگه از کلاس بیرونش میکنیم ولی من به این سختگیری نیستم ما داریم یه دکتری فقال حدیث تر میکنیم تو اونجا فقال رو خود بنده سرفصلش رو نوشتم نداریم انجام میدیم انشاءالله انتظار درستی بله انشاءالله دانشجویانی که در رشته قرآن و حدیث فارغ و تحصیل بشن میتونن انشاءالله بیان دکتری فخول حدیث ما تصویب شده شو از وزارت گرفتیم ولی سرفصل هنوز ندادیم اصل رشته تعیید شده ولی هنوز سرفصل نویسی نکرد خب ولی لازم هست و باید انجام بشه در این زمینه شما باید کتابهای لغت رو به کلاس ببرین همین امروز صبح یه کلاسی داشتم یه جای دیگه تو کتابخونه تشکیل دادم چون مثلا 17 18 جلد کتاب خود باید می‌بردیم می‌وردیم چقدرم کتابدارا خوشحال میشن برامون چاییو آوردن کیک آوردن اینا چون واقعا کتابخونه های ما متروکه است به زبان سریح میگم و متروکه متروکه شما هر جای خیلی دورم برید میرید کتابخونهشونید چند هزار جلد کتاب داره ولی از کتابدارش میپرسید که دفعه قبل چه کتابی از شما بردن باید فکر کنه حتی تو همین دانشگاه ما شما برید از کتابدار ما بپرسید فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از شما رو بشناسه تک و توک آره. یه دوایی یه دفعه چیزی باید باش بکنید یه کتابم ببرید امانت نیارید اینجور میشه ما کتاب لغت رو باید در دسترس دانشجو قرار بدیم خیلی تعداد افرادی که کتاب رو می‌شناسن کمه به علاوه فقط کتاب در دسترس گذاشتن نیست طرز استفادش هم باید بیاموزیم اگر که میخواید این مباحث رو بیشتر پیگیری بکنید همین کتاب فقه و های صبحی ساله یا استادایی که در رشته ادبیات عدبیات دانشگاه ها درس میدن. به ویژه فقر اللغه قدیم. فقر الان یه جدید زبانشناسیم هم بهش اضافه شده یه مقداری تغییر زاویه داده. ولی کسایی که فقر اللغه قدیم میگن باشون کار بکنید با این کتابای لغت خودتون میتونید آموزش رو ببینید و به چیز منتقل بکنید. من دیگه مثالهایی زدم من نکس بیعته الله و هو اجزم ما تصور میکنیم که این شبیه جزامی هست در صورتی که این به معنای مقتوعه مقتولیت رو میگن اجزم یا این نشر الناس یوم القیامه المسلس بخونیم مسلس بخونیم مسلس بخونیم اصلا مثلث بیچاره چیکار کرده چه چی کاری به اینجا داره دایره که بدتره که ها مربع مسلس این یعنی چی خود حضرت فرموده مثلث این است این در کتاب فقه الحدیث ما اینو تحت عنوان های تفسیری آوردیم اونایی که درس دادن این رو متوجه هستن با سوال زیادی هم روبرو میشن از طرف دانشجو من پیش برای اینکه سواه کنن آقای گلشندی میگم که کسانی که میخوان بدونن این حدیث رو کجا گیر بیارن یکی کتاب معانل اخباره یکی ابوابی در میزان الهکمه به نام مل ادب تفسیر الخیر مل مثلا شجاعه و از این قبیل ابوابی در میزان الهکمه داریم روایاتی که یک معنای خاصی به واژه‌ای اطهام میکنن اینو تو بحث اصطلاحات هم شما میتونید تو فقه یک 1 بگنجونید های تفسیری هم به کار فهم واژه ها میان هم به کار فهم واژه اصطلاحات دینی آیه آسان زده اگه کسی سوال داره بنویسند بله چون که بله ما مجبور هستیم از طریق تایپ بله ولی در پایان جلسه دسترسی صوتی هم میدیم این خب ما باید گاهی واجه های آسان و آشنا رو هم باز اینجا بگیم اسم مثلا فرض بکنید قهرمانه ما چند تا اسلاید دیگه داری مایه 17 تا دیگه مونده خب ما در پایان این قسمت یعنی یه سوالی رو مطرح میکنیم که دوستان روش بعدن کار بکنن ببینید سوال اینه ما در فهم واژهها تو کتاب فقه الحدیث یک دوره روش و محدیث همه این کتاب ها بنده دیگران فرمودند که باید حتما علاوه بر کتاب های لغت به فقلهث ها به قریب الحدیث ها مراجعه بکنیم. تفاوت اصلی اینها رو شما چه میدانید؟ من چهار تا گزینه گذاشتم، کتاب های لغت تقدم زمانی در تعلیف دارند به همین جهت معتبرترند گزینه دوم عکس اینه یعنی کتاب های قریب الحدیث تقدم دارند وقتی میگیم یعنی همه ها یعنی همه کتاب لغت ها مقدمن همه کتاب قریب الحدیث ها سه کتاب های لغت تبیین دقیقتر و ریستری از واژه به دست میدن چهار گزینه چهار قریب الحدیث ها معنای کاربردی واژه رو در حوزه حدیث بازگو میکنند کتاب های قریب الحدیث معنای کاربردی واژه رو در حوزه حدیث بیان میکنند بازگو میکنند آیه حسن زده چقدر وقت دارن تا این جواب رو بدن شما شما وقت در خوب دو دقیقه خوبه؟ سه دقیقه وقت میدیم تو این سه دقیقه اونایی که جوابشو میدونن سوالایی که دارن رو بپرسن نه نه همین همین یه چند تا سلویت پایین برو من ببینم به کجا رسیدیم یادم باشه که برگردیم ساختار نحویر برمیگردیم شوالا. پیشنهاد شد تو این سه دقیقه چون دیدیم سوالی خیلی نیست اون نمودار کلی رو که میخواستیم آخر سر الان پیشنهاد بدیم ببینید این چون برای برخ این سوال خیلی راحت جوابش مخصوصا با اون خوندن من که اصلا تابلو بود <تصفيق> خب این خانواده ما میگه تو حرفو نمیتونین نگهداری تا یه چیز بگیم لوم میدین <تصفيق> خب این چجوری میشه ریز ریز بیاییم ولی درشت بشه خب کم کم میاریم، خب پس درشت درشتش بکنیم آره کم کم بیاییم پایین با این حد ماها میاد <تصفيق> شما میبینید اونو آمد بزرگ کنن مسئله دیگه با کشیدن میتونید جا به جا شید بخوایدن میخواید یکم اینجوری